کتاب صوتی آورا نوشته کارلوس فوانتس ترجمه عبدالله کوسری راوی تایماز رزوانی فصل اول آگهی را در روزنامه میخانی جنی فرصتی هر روز پیش نمیآید. آید میخانی و باز میخانی گویی خطا به هیچ کس نیست مگر تو حتی متوجه نیستی که خاکستر سیگارت در فنجان چایی که در این کافه ارزان کسیف سفارش داده ای می میریزد بار دیگر میخانیش آگهی استخدام تاریخ جوان جدی با انضباط، تسلط کامل بر زبان فرانسهی ای، جوان؟ تسلط بر زبان فرانسه کسی که مدتی در فرانسه زندگی کرده باشد مقدم است چهار هزار پسو در ماه خوراک کامل اتاق راحت برای کار و خواب تنها جای نام تو است. این آگهی می بایست دو کلمه دیگر هم میداشت دو کلمه با حروف سیاه بزرگ فلیپ مونترو. مورد نیاز است فلیپ مونترو، بورسیه ای سابق در سوربون تاریختانی انباشته از اطلاعات بیسمر خوکرده به کندوکاف در لابلای اسناد زرد شده، آموزگار نیمه وقت مدارس خصوصی 900 پسو در ماه. اما اگر چنین آگهی میدیدی بدگمان می شدی آن را شوخی میگرفتی. نشانی دونسلس 815. شماره تلفنی در کار نیست. شخصا مراجعه کنید. انعامی روی میز میگذاری. کیفت را برمیداری برمیخیزی. در این فکری که شاید تاریختان جوان دیگری درست با موقعیت تو همین آگهی را دیده بر تو پیشی جسته و همکنون این شوق را به تست آورده است به سمت چهارراه راه می روی و می این فکر را فراموش کنی استاده به انتظار اتوبوس تاریخهایی را مرور میکنی که باید حاضر و آماده بر نوک زبانت باشد تا شاگردان خوابالود احترامت را نگه اتوبوس نزدیک میشود و تو به نوک کفشایی سیاحت خیره شده ای. باید آماده باشی دست در جیب میکنی میان سکه ها میگردی و سرانجام سی سنتاو بیرون میاری باید آماده باشی به دستگیره چنگ میزنی. اتوبوس از سرعتش میکهد اما نمی و بالا میجهی. با فشار راهی باز می کنید سی سنتاف را به راننده می دهی. خود را میان مسافرانی که وسط اتوبوس ایستادهاند جا می دستگیره بالای سرت را میگیری کیفت را تنگتر زیر بازوی چپت می فشاری و بی اختیار دست چپت را بر جیب پشت که دسته اسکناس هایت آن است میگذارید. امروز هم درست مانند هر روز دیگر است. و تو تا صبح فردا که در همان کافه می نشینی و ای سفارش می دهی و روزنامه را رو باز می کنی آگهی را به یاد نمیاری به سراغ آگهی ها می روی آگهی باز تاریخ دان جوان هنوز کسی این کار را نگرفته آگهی را دوباره میخوانی و بر کلمات آخر درنگ می کنی چهار هزار پسو عجیب است که هنوز کسی در خیابان دونست زندگی می کند. فکر می هیچ کس در مرکز قدیمی شهر خانه ندارد. آهستگام برمیداری داری و می در مجموعه ناموزون خانه های قدیمی مستعمراتی که همه به مغازه های تعمیرکاری، جواهر فروشی، کفاشی و داروخانه بدل شدند شماره 815 را بیابی. شماره ها تغییر کرده، رنگ شده و مخشوش است. شماره 13 کنار دویست. پلاکی قدیمی با شماره 47 روی نوشته کجاکوجی با زغال محو شده 924 فعلی به طبقه دوم ساختمان ها نگاه آن بالا همه چیز چنان است که بوده گرامافون های خودکار مザهم آنجا نیست نور چراغ های جیوهی خیابان به آنجا نمیتابد. کاله های ارزانی که در راستای خیابان میفروشند تأثیری بر آن بالا ندارد بر هماهنگی سنگ های تراش خورده قدیسان سنگی از شکل افتاده با فوج کبوتران بر شانه شان بالکن های مشبک ناودانهای های ناودانهایی از سنگ سیاه با صورت انسان و حیوان بر پرده های سبزگونی که پنجره های دراز را تیره تر می و بر پنجره هایی که چون با آنها مینگری کسی خود را از کنارشان پس می کشد به نقش خیال انگیز گل و بوته های کنده شده بر سردر چشمی میدوزی و آنگاه به پایین دیوار فرسوده می نگیری و شماره 815 قبلا 69 را می آبی. با تختقی گونگ کوبه در را به صدا در می کله مسین سگی چنان ساییده و صاف که همانند کله جنین سگیس در موزه علوم طبیعی گویی صورت سگ به تو نیشخند می زند دست از این فلز سرد بر می داری. در با نخستین فشار اندک انگشتان تو باز می شود اما پیش از آن که به درون بروی آخرین نگاه را از فراز شانه به صفه بلند اوتوموبیل های مانده در جا که خرخر می کنند، بوغ میزنند و دود مسموم بیتابی خود را می‌پراکنند. میکوشی تصویری از این دنیای بیاعتنای خارج برای خود نگه داری. در را پشت سر می‌بندی و چشم تاریکی دالانی سرپوشیده می‌دوزی. این باید حیاتی یا چیزی مثل آن باشد؟ چرا که میتوانی بوی گل، رطوبت گیاهان، ریشه های در حال پوسیدن و عطری خواب آلوده و سنگین را بشنوی نوری نیست که راهنمایت باشد در جیبت به دنبال کبریت میگردی که صدایی تیز و نازک خطاب به تو میگوید نه لازم نیست خواهش میکنم سیزده قدم به جلو بردارید سمت راستتان به پلکانی میرسید لطفا بالا بیایید پله ها بیست و دوتاست بشماری دشن. سیزده قدم سمت راست بیست و دو پیچیده در بوی نمناک گیاهان گامهایت را می شماری. نخست بر سنگ فرش گام می و آنگاه بر چوبی که زیر پا می و در اثر رطوبت اسفنجوار شده است بیست و دو پله را زیر لب می شماری و بعد می ایستی قوتی کبریت در دست و کیف به زیر بقل دری که بوی چوب کاج کهنه می که که که که که سر انجام به فشاری در را باز میکنی. اکنون فرشی را زیر پایت حس میکنی. فرشی نازک که ناجور پهن شده است پایت بر رویش می لغزد و چیزی نمانده که بیفتی. آنگاه انگاه نور خاکستری ملایمی را می بینی که برخی چین و فرش را آشکار می کند. صدا میزنی؟ خانم چون گویا به یاد میاری که صدای زنی را شنیده ای خانم حالا لطفاً به سمت چپ بپیچید، در اول، در را باز میکنی. انتظار نداری که دری چفت شده باشد، همه درها به فشاری باز میشوند. رشته های نور در مجه های در هم میتند، چنانکه گویی از پس توری ابریشمین به آنها نگریستهی. تنها چیزی که میبینی، مشتی رشته نور لرزان است، سرانجام می ببینی که این رشته های نور از شهم های است که بر تاخچه ها گذاشته یا به شکلی نامنظم در فاصله قاب های گچی دیوار آویختند. این شهم پرتوی پرید رنگ بر اشیای نقرهی تونک های بلورین و آینه هایی با قاب های متلا می افکند. آنگاه در نیمه روشنای بالای اتاق تخت خواب را میبینی و جنبش ناچیز دستی را که گویی به اشاره می خاندد. اما تا بان با کهکشان نورهای مقدس پشت نکرده ای نمیتوانی چهره این زن را ببینی سکندری خوران به پایین تخت می روی. برای آن که به بالای تخت برسی باید دور بزنیش پیکری نهیف که انگار در پهنه آن گم شده است دستت را که دراز می کنی دست دیگر را نمیابی گوش و موی پرپشت موجودی را لمس می کنی که آرام و یک نواخت مشغول جویدن است و با تابش سرخ چشمانش تو را نگاه چشمانش تو چشم لبخند میزنی و خرگوش را که کنار دست زن قوز کرده نوازش میکنی. سرانجام با او دست میدهی و انگشتان سردش زمانی دراز در پنجه یرق کرده ای تو میماند. من فلیپ منترو هستم. آگهیتان را خواندم؟ بله. میدانم. میبخشید. اینجا صندلی نیست. همینطور خوب است. نگران نباشید. بسیار خوب. خواهش میکنم بگذارید نیمروختان را ببینم. نه. اینطور خوب نمیبینمتان به طرف نور برگردید بله اینطور عالی است من آگهیتان را خواندم بله میدانم فکر میکنید برای این کار مناسبید تحصیلاتتان را تمام کرده اید بله خانم در پاریس ها بله خوشحال میشوم که بشنوم همیشه همیشه بله میدانید آنقدر عادت کرده بودیم و بعد کنار می روی بگونه ای که پرتو شام و بازتاب نور در نقره و بلور سربندی ابریشمین را آشکار می کند که بیگمان گیسویی بسیار سپید را میپوشاند و چهره را قاب می گیرد که چندان پیر است که کودکانه می نماید تمامی پیکرش را ملافه ها و بالش های پرویقه سپید بلندی که سفت و سخت بسته شده می پوشاند تمامی پیکرش مگر ساعدش که در شالی پیچیده شده و دستهایی چروکیدهش که بر شکم گذاشته است تنها تا زمانی به شهری و خیره میشوی که خرگوش از جایش تکان می‌خورد و تو می توانی دزدانه نگاهی به خورده های نان پراکنده بر ابریشم قرمز و فرسوده بالش بیاندازی خب بهتر است به اصل مطلب بپردازیم از عمر من چیزی نمانده آقای مونترو به همین دلیل تصمیم گرفتم اصلی را که همه عمر رعایت کرده بودم زیر پا بگذارم و در روزنامه آگهی بدم بله، من هم به همین دلیل به اینجا آمدم. البته، پس شما قبول می کنید. دلم می خواهد کمی بیشتر بدانم. بله، تعجب می کنید. می بیند که به میز کنار تخت مینگری. بطری هایی با رنگ های مختلف لیوان ها، قاشق های آلومینیومی، ردیف شیشه های قرص لیوان های دیگر همه آغشته به مایعاتی سپید رنگ بر کف اتاق در دسترس او. آنگاه در میابی که تخت تنها اندکی بالاتر از کف اتاق است. ناگهان خرگوش از جا میجهد و در تاریکی اتاق ناپدید میشه. من چهار هزار پسو به شما میدهم. بله. در آگهی امروز هم نوشته بود. آه. پس چاپش کردند. بله. چاپ شده بود. مربوط به خاطرات شوهرم است. ژنرال یورنته. باید پیش از آن که بمیرم مرتب بشود. دلم میخواهد منتشر بشود. چند وقت پیش تصمیم گرفتم. اما خودش ژنرال چه خودش نمیتواند او ش سال پیش مرد آقا. اینها خاطرات ناتمام اوست باید پیش از آن که بمیرم تکمیل شود. اما من همه چیز را به شما می گویم. شما نوشتم به سبک شوهرم را یاد می گیرید. کافی است که دست نوشته هایش را مرتب کنید و بخوانید تا شیفته سبک او بشوید. چقدر روشن. چقدر. بله میفهمم. ساگا. ساگا کجایی؟ بیا اینجا ساگا. کی؟ مونس من. خرگوش؟ بله. بر میگردد. آنگاه که چشمانه به پایین دوخته را بالا میبری لبانش بسته است. اما تو میتوانی دیگر بار کلماتش را بشنوی برمیگردد میگردد. که گویی پیرزن همان لحظه این کلمات را بر زبان آورده لبانش بی میماند به پشت سر نگاه میکنی و درخشش اشیای مذهبی کم و بیش کورت میکند. چون دیگر بار به او مینگری گیری می که چشمانش بسیار فراخ شفاف نمناک و درشت است کم و بیش هم سپیدی زردی گرفته گردا گرد آنها. چنان که تنها نقطه های سیاه مردمک این شفافیت را برهم هم دمی بعد چشما در لایه‌های سنگین پلکای فرو افتاده گم می گویی پیرزن زن نگاهی را حفظ کند که اکنون در جرفای آن هفره های پنهان است. پس شما اینجا می مانید. اتاقاتان طبقه بالاست، آن بالا آفتابگیر است. شاید بهتر باشد مزاحم شما نشوَم خانم. میتوانم همانجا که هستم بمانم و دستنوشته ها را بخوانم. شرط من این است که شما اینجا زندگی کنید. وقت زیادی نداریم. اگر میشد آورا پیرزن برای نخستین بار از زمانی که به اتاقش پا ای حرکتی می کند. چون دستش را دیگر بار دراز می کند نفسهای سراسیمی را کنار خود حس می کنی و دستی دیگر دراز می شود تا انگشتان او را بگیرد برگرد خود می نگری. دختری آنجا ایستاده است دختری که تمامی قامتش را نمیتوانی ببینی چرا که بسیار نزدیک به توست و آمدنش بس ناگهانی بوده بیکوشکترین صدایی حتی آن صداهایی که شنیده نمیشوند اما به هر حال واقعی هند. چرا که دمی بعد به یاد می چرا که گذشته از هر چیز رساتر از سکوتی هستند که همراهشان است گفتم که برمیگردد کی؟ آورا مونس من برادر زادهام. اصر بخیر خیر دختر سری می جنباند و در همان دم خانوم پیر حرکت او را تقلید می کند ایشان آقای مونترو هستند از امروز پیش ما میمانند. کمی جا به جا تا نور شمها چشمت را نزند دختر همچنان چشمانش را بسته و دستهایش به پهلو آویخته است نخست به تو نمی آنگاه نرم نرم چشم باز می کند چنانکه گویی از نور میترسد سرانجام میتوانی ببینی که این چشم ها سبز چون دریایند موج میزنند به کف می نشینند دیگر بار آرام میشوند و آنگاه باز چون موجی برمی‌آشوبند در آنها مینه و با خود میگویی این تصور درست نیست چرا که اینها چشمان سبز زیبایی هستند همچون همه چشم های سبز زیبایی که تا کنون دیده ای. اما نمیتوانی خود را فریب بدهی. این چشم ها موج میزنند، دگرگون میشوند چنان که گویی چشماندازی فرا رویت مینهند که تنها تو میتوانی ببینی و طلب کنی بله، من پیش شما میمانم